خب حالات اسم التفضيل العلم أنفع من المال الشمس أكبر من الأرض الجبال أعلى من التلال الولد الأكبر ذكي الدار الكبرى جميلة البقرات الكبريات هزيلات الكتاب أفضل سمير القاهرة أوسع مدينة في مصر رجال العلمي أنفعوا رجال عائشة أفضل النساء أو فضلهن مكة والمدينة أشرف المدن أو أشرفاء المدن العلماء العالمون أفضل الناس أو أفضل شار قروف أز أمسل رعا وردلود بخاترين كإسم تفزيل شار حالات داره اسم تفضیل یک زمانی که الفلام نداره و مضاف نیست مانند امثله گروه اول دو زمانی که اسم تفضیل الف داشته باشه مانند دا امثله گروه دوم سه زمانی که اسم تفصیل مضاف به نکره باشد چهار زمانی که اسم تفضیل مضاف به معرفه باشد خب الان بیایید در قوائد چون قوائد کاملی نارو بیان میدارد سد و قائده لسم تفضیل اربعو حالات میگه اسم تفضیل چه حالات داره الیف ان یکون مجردا من ال وال اضافه خالی از لام و اضافه باشه نه لام داشته باشه و نه مضاف باشه مانند در گروه همسله اول الالمو انفعو من المال انفعو نه لام داره و نه مضاحه است خوب در این حالت میگه و فی هاده الحال یجب افراده در این حالت واجب است که مفرد بکار بره و تذکیرهو و مذکر بکار بره تاهمیدید؟ میبیریم الالم الشمس الجبال در هر حالت مهم مذکر بکار رفته انفع اکبر اعلا هم مفرد خوب و بعده بالمفضل عليه آوردن بعد از اسم تفضیل مفضل علیه را مجرور به وسیله مید یعنی مفضل علیه بعد از این حالت به شکل مجرور با می آید مانند انفعو من المال به مال مفضل علیه گفته میشه چون علم برشتی داده شده است برتری داده شده است خب پس این حالت اولش بود که امثلی گروه اول بود ترکیبش رو هم گفتیم العلم انفع من المالی العلم مبتدا انفع خبر با ان یکون يكون محلا بال دومين حالتش اینی که حلان مش حلال طال معنیش اجبار و من حلان معنیش میخوای تپه bale in طرف های بزرگ بله خب ان یکون محلا به ال داشته باشه در حالتش و في هذه الحال تجیب مطابقته لموصوفه در این حالت واجب است که با موصوف خودش مطابقت داشته باشه ببینید الولد الاکبر زکیون الولد مبتدا الاکبر صفات زکیون خبر چون ولاد مذکر هست و مفرد اکبر هم می‌بینیم مفرد هست و مذکر در این حالت که اسم تفسیر الف داره بعد مطابقت با موصوفش داشته باشه موصوف اینجا مبتدا از ولد هست یا بله اکبر صفته ولاد هست علی جان اینجا نداریم فقط داره ولده برتریش چیکار میکنه؟ بیان میکنه. اد دارل کبرا جمیلتن. دار میشه، میوشه؟ نه؟ چی؟ تین نه، مبتدا خبر همشون. اد دارو مبتدا، الکبرا صفت دار، جمیلتون خبر, خبر هست. خب، الکبرا اسم تفضیل هست. مؤنث اکبر و کبرا دیگه چرا به بکار رفته؟ بخاطر که دار محننس است. خانه بزرگتری زیباست فرزند بزرگتره داناست <تصفيق> البقرات و الكبرایاتو هزیلاتون البقراتو مبتدا الكبرایاتو صفتش هزیلاتون خبر هست خب چرا الكبرایات اینجا به شکل جمع و به بکار رفته گفته بود در شماره دوم گفته بود اگر الف لام داشته باشه در این حالت باید مطابقت با موصوفش داشته باشه مطابقت با چی ممید. یعنی اگر موصوف مفرد بود مذکر اسم تفضیل میشه ممید. اگر اون مؤنث بود این چه کار مؤنث فهمیدید مطابقت با داشته باشه قسمة با أن يكون محلا بعال دوه من حالات شينك الافلام داشته باشه معنى دامشله گروه دوفهم كتوزي دادين وفي هذا الحال تجب مطابقته لموصوفه درين حالات واجب است با موصوفه مطابقت داشته باشه ولا يُعطى بعده بالمفضل عليه وبعد ذين مفضل عليه نداري همين سوالي بود كشما فرسيدي دانين حالات مفضل عليه نداري جين أن يكون مضافا إلى نكرة سقومين حرکتینه که خود اسم تفصیل مضاف به نکره باشد و فی هذه لحال تجب و فی هذه الحال یجب افرادو و تذکیرو در این حالت واجب است که اسم تفصیل مفرد و مذکر به مانند مثل گروه سوم الكتاب افضل سمید ببینیم مفرد رفته و مذکر القاهرتو اوصع مدینة فی مصر می‌بینیم باوجود این که قاهر موننس هست مفرد و مذکر هست رجال والعلمی انفعو رجال باز هم مفرد و مذکر پس زمانی که پس در دو حالت مفرد و مذکره یک زمانی که الفلام نداشته باشد معنید الكتاب و انفعو من المال یا زمانی که مضافه به چه باشه پس زمانی که هم الفلام نداشته باشه و هم مضاف نباشه و که مذکر و مفرد بهکار بره و هم زمانی که مضاف بنکر ای باشه بله، الفلام نداشته باشه و مضاف بنکرری باشه، چهار دال ان یکون کوول الى معرفت زمانی که مضاف به چه باشه؟ به معرفه ای باشد. و هنه تجوز فيه المطابقت و عدمها در این حالت دو حال جائزه جائز هست که مطابقتش بدین و جائز هست که مطابقتش ندیم یعنی مفرد و مذکرش بکار ببین خودش آورده دو حالت تو افضل النسائی ببینید اینجا مطابقت نداده تو افضل النسائی مطابقتش ندادیم مفرد مذکر شامل ولی میتونیم اینجوری هم بگیم عایشه تو فضلهن مو معنیه عایشه تو افضل النساء عایشه افضل زنان عایشه تو متوجه شدید عایشه تو عایشه مکه اشرف المدن مکه و مدینه مصنع هستن میتونیم بگیم بخاطر اینکه دو تا هستند مکه و مدینه دو شدن دو تا ولی میتونیم تطبیقش ندیم مفرد مذکرش رو کاربریم بگوییم مکه تو المدینه اشرف المدن و میتونیم بگیم مکه تو المدینه تو المدن هست بله بله ما میتونیم تطبیقش بدیم و میتونیم تطبیقش ندیم العلماء العاملون می توانیم بگیم افضل الناسی و میتونیم بگیم الولماء العاملون افاضل الناسی یا افاضل هم زمیر و شا متوجه شدید بزرگا الولماء میشه مبتدا مبتده العاملونه می شه صفتش افضلو. خبر الناسی مضافون اله این شد از حالات اسم تفصیل پس اسم تفصیل چند حالت داره؟ چار حالت داره